بچه های عزیزم، کلمه غلط رو پیدا کنید، روی کلمه درست کلیک کنید، با فلش بعدی میتونید برید تمرین بعد،